بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام من صاد كتاب انزل إليك فلا يكون في صدرك حرج من هنستضغيه وذكرى للمؤمنين به نام خداوند بخشنده مهربان الف میم صاد کتابی است که بر تو فرستاده شده است و سینه تو از این ناخگی نبوکت تنگ شود تا با آن خطا را بیم دهی و برای مؤمنان فندیس است ما انزل ربکم ولا تتبعو من دونه ای مردم، را که با شما از جانب پروردگار شما نازل شده است، پیروی کنید و بغیر او دیگری را به حیث دوست و حامی پیروی نکنید چقدر کم پذیر هستید و من قویت اهلتناه فجاءه او بسا باشندگان و در برابر گناهانشان تباه کردیم پس ناگهان عذاب ما ایشان را در شبانگاه گرفت یا در هنگامی که ایشان به خواب نیم بودند تمام كان دعواهم جزاء ام بسنا الا ان قولهم اننا ظالمين بدون عذاب ما بهشان رسید دعوایشان جزئی نبود که بگویند ما واقعا ستمکار بودیم فلن و البته کسانی را که بسوی ایشان پیام فرستاده شده و نیز پیام را مورد سؤال قرار میدهیم فلن افتالن عليهم بعلم و ما و که به ایشان سرگذشتشان را به علم خود که حاوی همهی رویداد بازگو میکنیم آری و ما لحظه غاقب نبوده این یوم وزن کردن اعمال حق پس کسانی که وزن اعمال نیکویشان گران باشد همیشانند رستگار و من ربطت موادهم فاولئک الذين خصهم بما كانوا بایاتنا یظلمون اما برعکس کسانی که وزن اعمال نیکویشان سبک باشد هم آنهای هند که خیشتن رازیان من ساختند به سبب ستمی که به آقیات ما انجام دادند و لقد في الأرض و لكم فيها ما حقا که ما شما را بر زمین استقرار دادیم و در آن برای شما اسباب معیشت را فراهم تاختیم اما اندکه از شکرانی که شما در برابر آن می کنید و لقد قلقناتن ثم صورناتن ثم قلنا للملائکت اسجدون آدم ثم قلنا للملائکة ازدودون آدم فسجدون إلا ابلیس لم يقوم من شما را آفریدیم سپس شما را شاکل دادیم سپس فرشتگان گفتیم که به آدم سجده کنید یعنی با او تعظیم کنید پس ایشان سجده کردند مگر ابلیس او از جمله‌ای سید نکونندان نبود. قال: ما منعك الا تسجد اذا قال: ان خلق منه خلقتني من نار وخلقته من طين. خداوند گفت: آیا چه چیز سرا از سيدا کردن باز داشت؟ در حالی که من ترا به این کار امر كردم. گفت من از او بهترم مرا از آتش آفریدی و او را از گل خداوند گفت تو از آن منزلت و مقام فرود آیی روی تو این حق نیست که در آن مقام و مثبت سرکشی کنی پس بیرون شو واقعا تو از افراد زلیل هستی شیطان گفت مرا تا روزی که ایشان برنگیختمی شبند مهلت بده قال خداوند گفت تو از جمله محلس داده شدکانی شیطان گفت چون مرا گمراه ساختی گمان برای گمراه ساختن آدمیان بر سر راه راست تو می نشینم. <تصفيق> ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلقهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكين <تصفيق> ستاسيقين بأيشان أكتش رويشان پشت سرشان جانب راستشان بجانب چپشان برای گمراه ساختنشان می آکم و تو از را سپاسگزار گذار خداوند فرمود از آن مقام با ننگ و آر بخاری بیرون رو و سوگند یاد می کنم که هر کسی از آنها از تو پیروی کند جهنم را از شما همگی پر می کنم آدم است آنت وزوجك الجنة من حيث ولا هذه من و زوجتالجنت بکلا من حیطش تو ما و لا تک و من اعضامیم. و ای آدم تو به هم سردر بهشت ساکن شوید و از حرجات خالصی بخرید اما با این درخت نزدیک نشوید که از سمت گران خواهید شد. فَوَقَّلَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا عُلِيَ عَنْهُمَا لِنْسَوَى أَدِيمَا وَقَالَ مَا نَهَىكُمَا رَبُّكُمَا وَقَالَ مَا نَهَىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِنَّا أَنْتُمْ نَمَلَكْنِي أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ سپس شیطان آنها را وصفه کرد تا آنچه را از اندامشان سنهان بود آشکار کافد و گفت فروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرده مگر بخاطر اینکه اینکه اگر از آن بخورید فرشته خواهید شد یا جاودانه در بهشت خواهید ماند. لکما و براو جا انخوز سبگان کرد که من خیخوخ شما هستم فدلاهما جغهو فلما باقش ججرة بدت من ورق الجنة و ناداهما ربهما الم انهکما عن سلکم الشجرة و اقول لکما این الشیطان لکما عظم مبین و به این ترسیب آنها را با فریب از مقامشان سرود آورد و هنگامی که آن درخت چشیدند اندامشان یعنی عورتشان بروج آنها آشکار شد و شروع کردند و قرار دادن ورک درختان بهشتی بر یکدیگر تا آن را بپوشانند و افربرکارشان انها را ندا داد که آیا شما را از آن درخت نفجه نکردم و نگفتم شیطان برای شما دشمن آشکاریست قرار ربنا گفتند پروردگارا ما بخیشتن ستم کردیم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود قال اهققوا خداوند فرمود از مقام خویش فرودایید در حالی که بعضی نسبت به بعضی دیگر دشمن خواهید بود یعنی شیطان دشمن شماست و شما دشمن او و برای شما در زمین قرارگاه با وسیله بهرهگیری تا زمانی خواهد بود فرمود در آن یعنی زمین زنده می شوید و در آن می میرید و از آن بیرون خواهید آمد ای ذلك ذلك فرزندان آدم ما برای شما لباس دادیم که شرمگاه شما را بپوشاند و هم برای شما دینتی باشد اما لباس تقوا از همه بهتر است این از نشانه‌های خداوند است تا باشد که ایشان پند پذیر شوند یا بنی آدم لا كما اخرج الجنة ينزع عنهما لذا فهما ليريهما فوقاتهما إنه يراكم هو وطبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين ای فرزندان آدم شیطان شما را نمیفریبد آنچنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد و لباسشان را از تنشان بیرون ساخت تا عورتشان را به آنها نشان دهد این که اینکه او و همکاران شما را میبیند و شما آنها را نمیبینید اما بدانید ما شیاطین را اولیای کسانی قرار دادیم که ایمان نمیآورند. وَإِذَا فَعَلُوا فَحِجَّةً قَالُوا وَجَرَّنَا عَلَيْهَا أَبَا أَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَدْقُ و هنگامی که کار زشتی انجام میدهند میگویند پدران خود را بر این عمل دیدیم و خداوند به ما دستور داده است بگو خداوند هرگز دستور به عمل زشت نمی آیا چیزی بر خدا می بندید که نمی دانید بگو پروکگارم به عدالت فرمان داده است و توجه خیش را در هر مسجد و به هنگام عبادت به سوی او کنید و او را بخوانید و دین خود را برای او خالص گردانید و بدانید همان گونه که در آغاز شما را آفرید دار دقار درستاخيز دارت مكفيد فريق هذا وفريق حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحتقون أنهم مهتدون گروهی را هدایت کرده و گروهی از ایشان و اساس اعمال خودشان گمراهی بر ایشان مسلم گردید ایشان واقعا شیاطین را به جز خدا حامی و دوست گرفتند و باز هم فکر می کنند که ایشان رهیاب هستند <تصفيق> آدم و فرزندان آدم، زینت خود را به انگام رفتن به مسجد با خود بر و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خداوند مصرفان را دوست نمی دارد و قل هِنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا خَالِطَتَنْ يَوْمَ تِيَامَهُ بگو زینت علاقی و چیزهای پاکیزه را از روزی که خداوند برای بندگان خود پیدا کرده چکت حرام گردانیده است بگو این بگو اینها در زندگی این دنیا برای کسانیست که ایمان دارند و در روز آخرت خاص از آن ایشان است به این ترتیب ما آیات را و مردمی به تفصیل بیان می کنیم که می دانند قل انما ما بطن بگو بِغَيْرِ من وَأَلَنْ تُشْرِكُ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانٌ گناه و سرکشی ناحق را و این که به خداوند شریک آرید چیزی را که خدا به آن هیچ دلیل نفرستاده حرام گردانیده است و نیز این را که در خداوند خدا بگویید بگوید که شما در آن دانشه ندارید اجل ولا يستقدمون برای هر امت میادی چون میادشان بسر رسید نه آن را تأخیر کرده و نه هم تقدیم یا اما يمبصون عليكم اياتي يبصون عليكم اياتي فمن تقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم اي فرزندان آدم اگر رسولان از خود شما به سراغتان بیاگند که اجات مرا برای شما بازگو کنند از آنها پیروی کنید زیرا آنها که پرهیزگاری پیشه کنند و عمل صالح انجام دهند و در اصلاح خویش و دیگران بکوشند نه ترس بر آنهاست و نه غم ناگ میشوند. و و کسانی که آجات ما را تکذیب نمازند و از قبول آنها سرکشی کنند اهل آتشند و در آنجا برای همیشه به سر برند يَا نَارُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَّنُونَ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا پس کیستم گارتر از کسی که دروغی را بر خدا بند بربندد یا آیات او را تکذیب کند برای چنین مردمی قسمت تعیین شده ایشان از کتاب لوح محفوظ میرسد تا وقتی که پیانبران ما که معذف و گرفتن روح اند برسند و روحشان را قبض کنند میگویند کجا هستند آن شریک که جز خدا به آنها نیایش می‌کردید. در جواب میگویند آنها از پیش ما گم شدند ما را در خلاک گذاشتند و, و بر خود گواهی میدهند که باقیان ایشان کافر بودند قالد قلوبی اومن قد غلط أضل لكم من الجن والجنس في النار كل ما دخلتكم مات اللعنة تختها حتى إذا ذرقو فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولهم ربنا خداوند به آنها میگوید در زمره گروه جن و انف که پیش از شما اند در آتش داخل شوید. هر گروهی که به دوزخ داخل می شود و گروه هم خود که پیش از ایشان وارد شده بود لعنت می فرستد. و چون همه به یک دیگر سای شوند دسته آخرشان در مورد دسته اولشان می گوید ای پروردگار ما همین هایند که ما را گمراه کردند. پس ایشان را عذاب دو چند از آتش نصیب کرتن خداوند میگوید برای هر یکی از شما عذاب دو چند است اما شما نمیدانید قول و باز دسته اولشان به دسته دومشان میگوید ببینید شما بر ما هیچ امتیازی ندارید پس در برابر آنچه مرتکب شده اید مجازات را بچشید الجنة حتی یرج الجمل في سمی القیاد و کذالک نجزی آنها که آیات ما را تکذیب کردند و در برابر آن تکبر وردیدند در حال آسمان برویشان گشودن نمی شود و هیچگاه داخل بهش نمی شوند مگر اینکه شطور شطر از سراخ و دن بگذرد بکترد این چونین را جزا می دهیم لهم من جهنم مهادو و من فوقهم غواش و کذالک نجد و غالیم برای آنها بسترهایی از آتش دوزخ بر روی آنها از آنس. و این چنین ظالمان را جزا می دهیم و الذین آمنوا و عملوا لا نكلف نفسا الا حسعه اولئی که اصحاب الجننت فيها خالدون کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند ما بر هیچ کسی باری را نمیگذاریم، مگر به اندازه توان او، ایشان اهل بهشتند و در آنجا جا به دنیا بسرمی برند. و نذروا ما في صدورهم من غل تجریم تحتهم الأنعام و قال الحمد لله الذي هذل هذا اهتدي لولا أن أدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون وأدلها إشان كينا ببدين إلى دور ميكني از زیر درختان قصرهای ایشان ها جریان دارد ایشان میگویند ستایش خدایی راست که ما را به این سعادت راه نموده است و ما هرگز توان رفتیابی نداشتیم اگر خداوند ما را هدایت نمیکرد و واقعا پیامبران فربرکار ما به حق آمدند به ایشان چنین ندا می شود این است بهشتی به که شما در اثر اعمال نیک خیش با آن انگردی دید و نادا اصحاب الجنة اصحاب النار انقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم به هیچیان به دوزخیان ندا می کنند ما واقعا در یافتیم که آنچه پروردگار ما به با ما وعده کرده بود حق است آیا شما نیز دریافتید یافتید که آنچه پروردگار شما به با شما وعده کرده بود حق است آنها میگویند. گویند بله در این حال آواز کننده در بینشان چونین آواز می دهد لعنت خدا بر ستمگاران باد الَّذِينَ يَفُدُّونَ عن سبيل آنهایی که مردم را از راه خدا باز می و میخواستند آن را کج جلودهند و ایشان از آخرت انکار داشتند و لینهما حجار و علم اعراض رجال يعرفون کلا بسیماهم و نادوا اصحاب الجنه ان سلام عليهم لم میان ایشان یعنی بهشتیان و دو دوزخیان حجابی و بر اعراف مردانی اند که هر کس را به علامات او می شناسند آنها به بهشتیان ندا می کنند سلام بر شما ایشان هنوز به بهشت داخل نشدهاند ولی امید داخل شدن به آن را دارند و ایزا افوریفت ارکارهم تلقاء افحاد ناری کالو و بنا لا تجعلنا معای قوم ظالمین هنگامه که چشمان ایشان به سوی دوزخیان بیافتد میگو جن بار پر برکارا ما را با گروه ستمگاران پی باست مگرداند وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَرَافِرِ جَالِنِ يَعْرِضُونَهُمْ بِسِمَاهُمْ قَالُوا مَا أَعْمَى عَنْكُمْ جَمُّكُمْ قَالُوا مَا أَعْمَى عَنْكُمْ جَمُّكُمْ وَمَا تَنْتُمْ تَتَفِرُونَ بَأَصْحَابِ أَرَافِرَ به مردمی که آنها را از می میشناسند ندا کرده می گویند شما را جمع دنیای شما و چیزی که به سبب آن سرکشی می کردید بکار نیامد. آمد لذین الجنة لا عليكم ولا انتم آیا اینها همان مردمی نیستند که شما در بارشان سوگند خوردید که خداوند آنها را از رحمت خود بهرور نمیساکد اکنون به ایشان گفته می شود و بهش داخل شوید بر شما ترس نیست و نه هم اندهگیم میشود دو زخیان النَّارِ بهشتیان الْجَنَّةِ أَن أَفْيَهُ برای ما آب یا از چیزهایی که خداوند برای شما روزی داده است ارضانی کنید اشان میگویند حقا که خداوند همه این چیزها را بر کافران حرام گردانیده است ان الذین اتخذوا دینهم لهوا و لا يداون و ضللتهم الحیاۃ لقاء يومهم وما كانوا آنهایی که دینشان را به لحو لعب گرفتند و زندگی دنیا فریبشان داده دا پس امروز ما ایشان را فراموش میکنیم که ایشان در زندگی دنیا ملاقات این روز خویش را فراموش کردند و از آگات ما انکار می‌ورزیدند و, و رحمت ما بدون شک به این کتاب را آوردیم که آن را به اساس دانش تفصیل دادیم برای هدایت و مرحمت گروه مؤمنان هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نتوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحسف فهل لنا, فهل لنا خیرالذی کننا نعمل قرطت رو انفسهم و ضل عنهم ما کانو یفترون آیا اینشان متحقیق شدن وعیدهاد قرآن را انتظار میکشند؟ روزی که وعیدهاد قرآنی متحقیق شود به عذاب الاسی گرفتار شدند کسانی که آن را از پیش فراموش داشتند می گویند بیگمان پیامبران پروردگار ما به حق آمدند آیا حالا ما شفاعتگرانی نداریم که برای ما شفاعت کنند یا باز گردانیده شویم تا رویه غیر از رویه قبلی خود در پیش گیریم در حقیقت ایشان خود را تباه کرده اند و چیزهایی را که به حیث معبود به دروغ گرفته بودند از ایشان قمي شبد ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش الليل النهار. لَقْسَ اللَّيْلَ مَنَعَ وَيَقُولُ حَتِيثَ وَالْجَمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُدُومَ مُتَخَاقَاتٍ بِأَمْرِ أَلَى لَهُ الْخَلْقُ وَالْعَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هفته کتابگاه رشمار ذاتی که آسمانها و تامین را در شش روز آفرید. سپس بر عرش مستولی شد شب را همچون ای بر روز می کشد. شب روز را به سرعت می جوید، به آفتاب، ماه و ستارگان را که تحت فرمان او اوگند. خان آفرینش و فرمان خاص از آن اوست. با برکت از خداوند فرورتگار جهانیان. انو ربم و این با رو و پنهان به پروردگار خیش رخیش کنید. او بیگمان تجاوز کراند را دوست ندارد. و لا تسجدو فی الارض بعد اصلاحها و دعوه خوفا و طمعا این رحمت الله قريب من المسینین و زمین بعد از اصلاح ان مرتکب فساد نشبید و او را با سرف و با امید باری نیوجش کنید بدون شک رحمت خدا بنیک و وهو الذي يرسل اللياح بسرا بين يدي وحمته حتى إذا أقلت حابا تقالا انسقناه البلد ميت فأنزلنا به الماء كذلك او است که بادها را پیش پیش باران رحمتش میفرستد تا زمانی که عبرهای سنگین بار را بر دوش خود حمل کنند در این هنگام آنها را به سوی سرزمینهای مردم میفرستیم و با وسیله آن آب حیات بخش نازل می کنیم و با آن از هر گونه از خاک تیره بیرون میآوریم و این گونه که زمین های مرده را زنده کردیم مردگان را نیز در قیامت زنده می کنیم تا مسذکر شوید والبلد الطیب یخرج نباته ربه با سرزمین پاکیزه گیاهش به فرمان پروردگار می کرد اما سرزمین های بستینک با زار جز گیاه ناچیز و بیارزش از آن نمی کرد این گونه را برای آنها که شاکر گذارند بیان می کنیم لَقَدْ عَوْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَالَتًا مِنْ إِلَاجٍ غَيْرُهِ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَبَابَ يوم عظيم ما قومش فرستادیم او با انها گفت ای قوم من تنها خداوند یا را پرستش کنید که معبود او برای شما نیست و اگر غیر این کنید من بر شما از عذاب روز بزرگ میترسم. تبسم ولی اشراف قومش با او گفتند ما تو را در گمرافی آشکاری می بینیم. قال ای يا قوم ولا رسول من رب العالمين قلت من نیست در منی ولی من فرستاده پروردگار جهانیانم ابلغكم ربی و ابلغكم مثرات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون رسالتهای پروردگارم را به شما ابلاغ میکنم و خیخاط شما هستم و از خداوند چیزهایی میدانم که شما نمیدانید اواعلم ان جا اقمذ آیا تعجب کرده اید که دستور آگاه کننده پروردگارتان با وسیله مرد از میان شما به شما برسد تا از عواقب اعمال خلاف بیمتان دهد و در پرتب این دستور پرهیزگاری پیشه کنید شاید مشمول رحمت الهی جدید. فکذبو بانجینه و معه في الفلك الذين كذبو بأياتنا انهم كانوا قوما اما اورا تكذيب کردند. و ما او و کسانی را که بابای در کشتی بودند رهایی بخشیدیم و آنها که آجات ما را تکذیب کردند غرق نمودیم چ اینکه آنها قوم نابینا و دل بودند و الی عاد اقام بودا ما من اله و تتقون وبسوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم گفت ای قوم من تنها خدا را پرستش کنید که جز او معبود برای شما نیست آیا پرهیزگاری پیشه نمی کنید قال الملؤ الذين كفروا من اشراف کافر قوم او گفتند ما ترا در سفاحت و نادانی میبینیم و ما مسلمان ترا از دروگویان میتانیم قال یا قوم لیت دی سفاحت ولی تنی رسول گفت ای قوم من هیچ گونه سفاهتی در من نیست ولی فرستاده ای از طرف پرورتگار جهانیانم ابلغ کم رسالات وضبی و امین. را به شما ابلاغ می‌کنم و من خیرخواف امینی بروجي شما هستم اوعدتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم فضروا إِذْ جعلكم خلقاء من بعد قوم نحيون. زادكم تعجب کرده اید که دستور آگاه کننده پروردگارتان با وسیله مردی از میان شما به شما برسد تا از مجازات الهی بیمتان دهد و بیاد آورید هنگامی شما را جانشینان قوم نوح قرار داد و شما را از جهت خرقت گسترش داد پس نعمت های خدا را به یاد آورید شاید رستگار شوید. گفتند آیا به سراغ ما آمده ای که تنها خدای یگانه را بپرستیم و آنچه را پدران ما می پرستیدند رها کنیم حال که چنین است آنچه از بلا و عذاب الهی به ما وعده میدهی بیاور اگر راست می قال قد وقع عليكم من ربكم رئس وغضب أتجادلونني في أسماء إن سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بآهن فَانْتَغْرُوا اِنِّي مَعَكُمْ گفت حقا که به شما از جانب پروردگار شما عذاب و غضبی واقعی شد آیا با من در باره نامهای معبودان نامنهاد مجادله می کنید که شما و پدران شما نامگذاری کرده اید در حالی که خداوند برای این کار دلیل نفرستاده است پس انتظار بکشید من نیز با شما از منتظرانم فإِن جِئْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ منا مِنَّا وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا و قطرنا دابی والذین کذبو بی آیاتنا و ما کنو پس او و کسانی را که بابای بودند برحمت خیش نجات دادیم و کسانی را که نشانهای ما را تکریب کرده و ایمان نیابرده بودند ری شکن تاقیم و ایلا سمود اقام صالحه قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تذكر في أرض الله ولا تمسوها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 نرسانید بر نعذاب دردناک شما را میگیرد و اذکرو جعلكم من بعد عاد و في الارض تتخذون من سهولها قصورا و الجبال و بیاد آورید هنگامی را که شما را بعد از آد جانشین گردانید و شما را در زمین جای داده که برای خود از زمین هموار ان قصرها بسازید و در کوها خانه بتراف شید پس های خدا را بیاد آرید و بر روی زمین وبجيبات بحقوري دعسنا الزيب قال الملأ الذين استتبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربك قالوا إنا بما لبی مؤمنون ولی اشراف متکبر قوم او با مستطعفانی که ایمان آورده بودند گفتند آیا راستی شما یقین دارید صالح از طرف پروردگار خود فرستاده شده است آنها گفتند ما به آن که او بدان مأموریت یافته ایمان آورده ایم قال الذین تتبرون این بالذین آمنتم به سرکشان گفتند واقعا ما منکر آن چیزی هستیم که شما به آن اعتقاد دارید فعفظن ناقتا و عتو عن امر ربهم و قالو یا صالح احتناد ما سپس ایشان آن شتر را پی کردند و از امر پروردگار خیش گستاخانه سرپیچی کرده گفتند ای صالح اگر تو واقعا پیامبری آن چی را که با آن ما را وعید میدهی بیاورد همو داریم و تولا عنهم و قال قوم لقد ربي و نصحت لکم ولیکن لا تحبون زلزله ایشان را گرفت و ایشان در سپید ادم در داخل خانههای خیش از پای آمدند در این حال از ایشان روی برگرداند و گفت ای قوم من بیگمان پیام پرورگار خود را به شما رساندم به شما را نصیحت کردم اما شما نصیحتگران را دوست ندارید ولوقا از قال لقومه اتأسون الفاحشت ما سبق کن بها من احد من العالمی بلوت چون به قوم خود گفت آیا چنان فحصای را مرتکب می شوید که پیش از شما هیچ یک از مردم آدمیان آن را مرتکب نشده است اینکم لت اتون رجالته و من دون نساء بل انتم قوم مسرفون شما به مردان به شهوت پیش می شوید نه به زنان شما واقعا قوم مصرفی هستید وما کان جواب قومه الا ان قالوا أخرجوهم من قریتكم انهم اناس تقهرون جواب قوم او جز این نبود که بگویند ایشان یعنی لوت و پیربان او را از شهر خود بیرون کنید اینها مردمی اند که به تکلف میخواهند پاکیزه و فا انجیناه و اهله کانت من الغابر چون کار به اینجا رسید ما او و خاندانش را رهایی بخشیدیم جز همسرش که با بازماندگان در شهر بود و انتظار علنهم ماطر چون بر آنها فرستادیم بارانی از سنگ که آنها را نابود ساخت اکنون بنگر فرانجام کار مجرمان به کجا کشید و ایلا مدین اقامم شعیبا قانا یا قوم الله ما لكم من الان غیره قد جاعت کن من ربكم فأغفوا الكيل والميزان ولا تلخطوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين قوم من خدارا بپرسيد كجزءو معبود نداريد دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است بنابرای حق ایمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم چیز نکاهید و در روی زمین بعد از آنکه در پرتو ایمان و دعوت انبیا اصلاح شده است فساد نکنید این برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید ولا تقودوا بكل خياطٍ تعيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونها وجا وَالصُّورُ إِبْقُونَ قَلِيلًا فَكَسَرَ فَوَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُصْدِدِينَ و بر سر هر راه ننشینید که مردم با ایمان را تهدید کنید و مؤمنان را از راه خدا باز دارید و با القاه شبهات آن را کج نشان دهید و بهخاطر بیاورید زمانی را که افراد کمی بودید و او شما را فزونی داد و بنگرید چگونه سرانجام مفسدان بود و این که وقائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وقائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو غير الحاكمين وإذا كنت ترى أن ترى أن ترى أن ترى أن و دسته همه هستند که به آن ایمان ندارند پس صبر کنید تا خدا در میان ما حکم کند و او بهترین حکم کنندگان است قانم ملعو لنخرجن اعوذن نفی قال اولکن ناکارهی سران متکبر قوم شایب به دو گفتند ای شایب تو حتما و کسان راکباتی ایمان آوردند. از شهر و آبادی خود بیرون میکنیم. مگر اینکه به آین با ما در آید گفت آیا ما به آینش ما در میآیم در حالی که آن را به سبب باطل را درست بودن دوست نمی داریم و نه دوست هرگز چنین کاری ممکن نیست. قال یتراینا علی الله کذبا ان اولنا فی ملتکم بعد اذن جان الله منها و ما لنا ان نعود فی يا ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اگر ما با آوين شما باز کردیم بعد از ان که خدا ما را از ان نجات بخشیده با خدا دروب بستئیم و شایست نیست که ما با ان باز کردیم مگر اینکه که خدایی که پروردگار ما بخواهد علم پروردگار ما به همه چیز احاطه دارد تنها بر خدا توکل کردیم پس پروردگارا میان ما و قوم ما به حق داوری کن که تو بهترین دابران وقال قوم زورمندی که از قوم او کافر شده بودند گفتند اگر از شعیب پیروی کنید زیان خواهید کرد فافادت سپس زلزلی آنها را فرا گرفت و صافگاهان به صورت اجساد بیجان در خانه‌هایشان مانده بودند مردمی که شعیب را تکذیب میکردند تور نابود شدند که گوی هرگز در آن خانه سکونت نکردند آنهای که شعید را سکزیب می از از دیانکاران بودند فتولا عمرم و کالا یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی و نصحت لفم فتن فآت قوم کافری پس شعیب ازشان روی برگردانید و گفت ای قوم من بیگمان من پیام‌های پروردگار خود را به شما رساندم و شما را نصیحت کردم پس چگونه بر مردم کافر تاسف خورم و ما او را من نبی الا لانا الب و ما هیچ پایامبری را به شهری نفر سالدیم مگر آن که اهد آن شهر را به سختی و رنج گرفتار کردیم تا باشد که ایشان تزرع کنند ما بدلنا ما كانت سيئة الحسن تحت عذل وقالوا وقالوا قد مسأبان الضراو واستراق فأخذناه دوتة وهم لا يشون. تفس ما بعيشان بجاو ينارهاتي أرامش تعرفين. تا آن که نمو کردند یعنی بسیار شدند و گفتند پدران نیز بر رنج براحت مواجه شدند سپس ایشان را ناگهان گرفتیم و خطری را که متوجه ایشان بود درد نمی کردند نا السماء والارض ولاكن كذبوا ولاكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا اگر مردم این شهر ها ایمان می و پرهیزگاری میکردند ما واقعا بر آنها دروازه های برکات را از آسمان و زمین می گشادی ولی چون حق را تکذیب کردند پس ایشان را در برابر اعمالی که مرتکب شدند گرفتار کردیم آیا مردم این شهرها از این ایمن شدند که در شبهنگام که ایشان خفته باشند عذاب ما به سروقتشان برسد او اهل القرآن و آیا مردم این شهرها از این ایمن شدند که در چاشگاهان که ایشان بی باکانه به با بازی مشغولند عذاب ما به وقتشان برسد اومدلهبلد آجا از گرفتار شدن خیش و تدبیر خدا منند در حالی که از گرفتار شدن خیش و تدبیر خداوند جز مردم زیان کار که چونین مینگارند کسی ایمن بودن نمی اولم یهدیل لذین یردون الارض من بعد اهلها ان لو نشاه اخرناهم بذنوبهم ونقبعوا علا قلوبهم فهم لا يسمعون او یا براو که زمین را بعد صاحبان سابق اند و میرافت میگیرند این واضح نشده است که اگر ما بخواهیم ایشان را به گناهانشان میگیریم و برددهایشان مهر میزنیم پس ایشان هرگز نمیشنوند کذا قیاب وبع این به شهرها که ما بر از رویدادهای آن را و با تو بازگو میکنیم. پامبرانشان بیگمان و با, با نشانه ها گرفتاکشن آمدند اما آنها و آنچه قبلا آن را کرده بودند ایمان نمی آوردند. به این ترتیب خدا بر دلهای کافران مهر میده و ما وجدنا من عهد و ان وجدنا بر بیشتر این مردم تابندی بعد نیافتیم و بیشتر ایشان را باقیان فاسق یافتیم. ثم بعثنا من بعد ان موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظوا كيف كان عاقبة المفسدين ثم موسى را بعد از ايشان بانشان هوي خود وفرعون باشراف قوم اوفرستازين اما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 حقیق علی این لا اقول علی اللہ الحق قریب تکن ببینه من ربكم فا اوزیل معیدنی اسرائیل سزادار آنم که در باری خدا جز حق چیز نگویم برای شما از جانب پروردگار شما نشانه واضحی را آوردهاام پس بنی اسرائیل را با من بفرست قال ن گفت اگر تو واقعا با نشانه آمدایی، پس آن را بیاور اگر تو استمریه راست کوچان. فَأَلْفَعَهُ فَإِذَا هِيَ عَبَامٌ مُوْمِنٌ. انگار موسی از آغی خش را انداد و در دم اشتهای آشکارا کردید. و نَزَعَ يَدَهُمْ فَإِذَا هِيَ بِيَوْلِ النَّظِيرِ و دست خود را از آستین برآورد و در دم برای بینندگان سفید درخشنده بود اشراف قوم فرعون گفتند این شخص واقعا صاهر ماهری است من ارضكم می شما را از زمین شما بیرون کند پس شما چه مشوره می دهید؟ و و سپس به فرعون گفتند جریان کار او و برادرش را به تأخیر انداز و جم آبری کنندگان را و همه شهرها بفرست. یا تو که در کل تا هر ساحر دانا و کار از را به خدمت تو بیابند. و جا سحرت فرعون قالو، این نه ما لاجر نیم کننا نحن الغالبین داهران نزد فرعون آمدند و گفتند: آیا اگر ما پیروز گردیم اجر و پاداش مهمی خواهیم داشت؟ لمن گفت آری، و شما از مقربان خواهید بود. گفتند ای موسا آیا او در اول بار تو می یا ما بی افکنیم؟ قال الو فلما القو سحر اعلون الناس و سره هم و جاغو به موسا گافت شما بی پس چون ایشان به سات جادوگری خود را انداختند چشمهای مردم را جادو کردند و ایشان را ترساندند و جادوی بزرگ آوردند. و اوحینا الى موسا ما يتبون. و به موسا بحیه کردیم که عصای خود را بیافکند. ناگهان به صورت مار درآمد و وسایل دروغین آنها را به سرعت برگرفت در این موقع حق آشکار گردید و آنچه آنها ساخته بودند باطل شد در آنجا مغلوب شدند و خار و کوچک گشتند و قلقی ازده و تساجدیم همگی به سجده افتادند و گفتند ما به پربرگار جهانیان ایمان آوردیم. رب موسی و فربرکار موسى و حارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إنها ذا لمكرم مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون فران گفت آیا به او ایمان آوردید پیش از آن که به شما اجازه دهم، حتما این است که در این شهر و دیار چیده اید تا اهلش را از آن بیرون کنید ولی به زودی خواهید دانست لَأُقَطِعَنَّ أَيِّيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ سفکند می خورم که دستها با پاهای شما را به طور مخالف یعنی دست راست با پای چپ یا دست چپ با پای راست قطع می کنم سپس همگی شما را به دار می‌آویزم. قولوا اننا الى ربنا منقلبون آنها گفتند ما بيگمان به پروردگار خود باز میگرديم وما تنقم مننا الا ان امننا بايات ربنا لم و با تو از ما بد نمیدانی، مگر اینکه ما به نشانه هاوی پروردگار خود چون به ما رسید ایمان آبردیم ای پروردگار ما بر ما شکی بایی و ما را مسلمان بمیران و قوم فرعون أتذووا سا وقوم ول يفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قالت نقتل أرناهم ونستحي نساهم وإن فوقهم قاهم أشراف متكبرة قوم فرعون قوتفند آیا تو موسا و قوم او را می گذاری تا در روی زمین فساد پیشگی کنند و تو و معبودان ترا ترک گویند گاف و زودی پسران ایشان را میکشیم کشیم زنان ایشان را زنده نگه می داریم و واقعا ما بر ایشان غالبیم قالم بالله ان للارض لله يورث امنا يشاء من عباده به للمتقين مسابقه مخادگفت از خداوند یاری و بشکیبا باشید بیگمان زمین از آن خداست هر را از بندگان خود که خواهد وارث آن میسازد و آخر کار از آن پر هیز است. قانو اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا آلاتا ربکم این یلیک عدوکم و یستخلیفکم فی الارضی فیانب و کیف تعملون گفتند ازید شدیم پیش از آن که نظر ما بیاگی و نیز بعد از آن که به سوی ما آمدی. گافت شاید پروردگار شما دشمن شما را نابود کند و شما را در زمین جانشین سازد تا آشکار گرداند که شما چگونه رفتار میکنید و لقد اخذنا آل فرعون بسنین و نقصیم من استمرات لعلهم یزدکون ما بگمان قوم فرعون را به خوشکاری ها و کمبود میبه ها مجازات کردیم صابوا شد كايشان فهميرند فاذا جاءتهم الحسنات قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه فان يوم بموسى ومن معه ولكن لا يعلمون. اما آنها تنها پند نگرفتند بلکه هنگامی که نیکی و نعمت با آنها می رسید می گفتند بخاطر خود ماست ولی موقعی که بدی و بلا با آنها می رسید می گفتند از چومی موسا و کسان اوست بگو چشمه همه این فالهاوی بد نزد خداست و شما را خاطر اعمال بدتان کی دهد اما اکثر آنها نمیدانند. و, به و, به و به گفتند محمد استنادی من نحن و هر زمان برای ما بیاوری که سهرمان کنی ما به تو ایمان نمی آوریم. فأغفلنا عليه مطوفان والجراد والهم لغضفاد عوضم آيات مفصلات فاستثبروا وكانوا قوما مجررين سفاث بالهارا پشتترهم برانها نوزل کردين طوفان <تصفيق> وملخ وآفت گیاكي ببقها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 لَئِنْ كَشَفْتَ عَمُنَّ الْرِجْزَ لَمُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَمُزْدِلَنَّ مَعَكَ بني إِسْرَائِيلِ و چون بر ایشان عذاب نازل شد گفتند ای موسا با پربردگار خواد به اساس ای که به تو کرده است برای ما دعا کن اگر تو از ما عذاب را دفع کنی ما براستی به تو ایمان میآوریم، و با تو بنی اسرائیل را می فرستیم فلما عنه الى اذا هم اما چون از ایشان عذاب را تا مدت معینی که آن را به سر دفع کردیم ناگهان خود عهد خیش را مشكاستاند فان تقدمنا منهم فاورقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين سرنجمارز انها انتقام گرفتيم و انهارا در دریا غرق كرديم ذيرا اواغات ما را تكذيب كردند واس اون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 و دمال ما ما و و و ما با مردمی که محروم بودند مناطق شرقی و غربی زمینی را که در آن برکت نهادیم به میراث دادیم و بعدی نیک پرورکار تو برای بنی اسرائیل و فاشد بسبب آن که شکیبایی برسیدند و آنچه فرعون و قوم او ساخته و آنچه بر بودند همه را ویران تیم و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر باتوا على قوم یحفون علی اخنام لهم قالوا يا موسى علنا و بنی اسرائیل را از دریا سالم عبور دادیم در مسیر خود به مردمی رسیدند که اطراف بطهایشان با توازن و خضو گرد آمده بودند در این هنگام بنی اسرائیل با موسا گفتند تو هم برای ما معبود قرار ده همان گونه که معبودان و خدایان دارند گفت شما خاو میجر و نادان هستید ما و باطل ما حقا که این مردم با همه چیزهایی که به آن سر و کار دارند نابود شدنی است و باطل است کار بسپرستی که ایشان انجام می دادند قالَ أَعْلَمُ الله أَبْغِيكُمْ إِلَهً وَهُوَ فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِ وبا سخنان خود گفت: آیا برای شما جز خدا معبود دیگر بوجود در حالی که او شما را بر همه جهانیان فزیلت داده است.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 با بیاد آرید هنگامی را که شما را از قوم فرعون نجات دادیم که شما را پیوسته به بدترین طریقه ها شکنجه می کردند، پسران شما را قتل عام می کردند و زنان شما را زنده می گذاشتند و در آن از طرف پروردگار شما آزمایش بزرگ بود. وَأَادْنَى مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتَمَّنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّتْ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْتِدِينَ برای موسی سی شب را میاد گذاشتیم و آن را با ده روز دیگر تمام کردیم پس میاد پرورگارش چهل شب کامل شد و موسی و برادرش هارون گفت در میان قوم من جانشین من شو و امور ایشان را اصلاح کن و راه فساد کاران را پیروی مکن و لما في قاطنا وكلمه ربه قال رب ادني انظر الي قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعْلَهُ دَسْكًا وَخَرَّ مُوسَى فَلَمَّا اَتَعْفَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ و هنگامی که موسا به ما آمد و پربرگارش با, با او سخن گفت عرض کرد پربرگاره خودت را به من نشان تا تو ببینم گفت هرگز مرا نخواهی دید ولی به کوه بنگر اگر در جاگ خود ثابت ماند مرا خواهی دید. اما هنگامی که پروردگارش جلب بر کرد آن را هم همتان زمین قرار داد و موسی مدهوش به زمین افتاد موقعی که به هوش آمد عرض کرد خداوندا منظهی تو من سوی تو تائب شدم و من نخستین المؤمنانم قال يا موسى ان استقيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين خداوند گفت ای موسی بدون شک من تو را به رسالت خود و به سخن خود بر مردم برگزیدم پس آنچه از وحی به تو دادم أنرى بغير وأستقاف سكتران باش وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعرة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها و برای او در الواح از هر چیز پندی و تفصیلی برای هر چیز نبشتیم. پس گفتیم اینها را به قوت بگیر و قوم خود را امر کن که بهترین آنها را به کار گیرند و بهزودی من به شما سرای فاسقان را نشان می أَصْرِفُوا عن آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَهُمْ يَرَوْنَ كُلَّ آيَةٍ لَا بِهَا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 بزودی زودی را از توجه به آجات خود باز می‌دارم که در زمین بدون استحقاق تکبر میکنند. و اگر هر آجه را ببینند باز هم به با آن ایمان نمیآورند و اگر راه رستگاری را ببینند آن را به حیث راه خیش نمی اما اگر راه ناسواب را ببینند آن را به حیث راهی خیش می این از سبب است که آجات ما را تکذیب کرده اند از آن غافل بودند و کسانی که با آیات ما و لقای گرفتا را تکذیب و انکار کنند اعمالشان نابود می‌گشت. آیا جز آن چرا عمل کرده‌اند؟ تاوداش تا دمی دا شبان. و تأخذ قوم موسى من بعده بعدى منحولىم عجلا جسد له هو. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. اتخذوه وكانوا ظالمين. قوم موسی بعد از رفتن او به کوشه تور از زیورات خود گوساله مجسمی را ساختند که آوازی همچون آواز گاو داشت او یا ندیدند که آن گوساله با ایشان حرف نمی زند و به ایشان راه رانشان نمی دهد آن را به خدایی گرفتند و افته بودند ولمما سقطت ايديهم وراوا انهم قد قالوا لئن لم يرحمنا ربنا لنا لنكونن من من حقیقت بدستشان افتاد و دریافتند که گمراه شده اند گفتند اگر پروردگار ما بر ما رحم نکند و ما را نیامرزد بی گمان از زیان کارانی و لما رجا موسی الى قومه غضبان اسفا قال بالسماء خلفتوني من بعدي اعجلتم امر ربكم وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَلَقَدْ رَأَى أَخِيهِ يَجُنُّهُ إِلَيْهِ قَالَ بِمَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَطَافُوا لِي وَكَادُوا يَكْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ و هنگامی که موسا خشمگین و اندهناک به سوی قوم خود بازگشت، گفت، پس از من بد جانشینانی شینانی برایم بودید و آگین مرا زایی کردید. یا در فرمان فروردگارتان و تمدید مدت میاده او در قضا وقت نمودید سپس الواح را افکند و سر برادر خود را گرفت و با عصبانیت به سوی خود کشید. او گفت، فرزند مادرم، این گروه مرا در فشار گذاردند و نزدیک بود مرا به قتل برسانند بنابراین کاری نکن که دشمنان مرا شماتت کنند و مرا با گروه ستمکاران قرار مده قال رب اغفر ل ولخ وخنفیرمتونتموسی گفت من و برادرم را بیا مورد و ما را در رحمت خدا داخل کن و تو محبانترین ترین إن این الذين اتخذوا الايد لسانهم غضب من ربهم و في الحياه الدنيا وكذلك نجز المفترين بجمان کسانی که گوساله را به خدای گرفتند بزودی به ایشان خشم از جانب پرورتگارشان می و ایشان را زلطیست در زندگی این دنیا و به این فتیب ما افتراکنندکان را جزا می‌دهیم. دکیم و الذین عملو سیئات تم متاغو من بعدها و آمنو این ربک اما کسانی که مرتکب اعمال بد می شوند و بعد از آن توبه می کنند و براسی ایمان می بیگمان پروردگار تو بعد از آن آمرزنده و مهربان است. الغضب اخذ الالواح و فی نسخت یهودم و رحمت للذین هم لربهم به هنگامی که خشم موسا فرون شد، الباه یعنی تبرات را برگرفت و در نوشته های آن هدایت و رحمت برای آنها که از سروتگار خشمی ترسند، وجود داشت وَأَخْتَرَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَرْنٍ وَإِنِّي أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَاعُ مِن يا الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت والمنافق ادر لنا وارحمنا وانت القي الغافر بماوسا قوم خد 70 از مردان را بروی میادگاه ما برگسید بنگاو می کے زلزله انهارا فراو گرفت و هلاک شدند گفت پروردگارا اگر میخواستی می توانستی می آنها و مرا پیش از این نیز هلاك کنی آیا ما را به آنچه چه سفیهانمان انجام داده اند مجازات و هلاک میسازی این جز آزمایش تو چیز دیگر نیست که هر کس را بخواهی و مستحق بدانی گمراه میسازی و هر کس را بخواهی و شایسته بینی هدایت می کنی تو ولی مایی مارا بیامارز و برمار رحم کن و تو بهترین آمر زندگان و اکتب لنا في و قال عذابی اتي واتعت كل شيء فاتابتها للذين يتقون ويدسون الزكاه والذين هم باياتنا و برای ما آن چرا در دنیا و آنچه را در آخرت خوب است مقرر کن واقعا ما بسوی تو بازگشت نمودیم خداوند گاف مجازات خود را به هر کی بخواهم میرسانم اما رحمت من همه چیز را فرا گرفته است پس آن را برای کسانی ارزانی می کنم که پرهیزگاری می ورزند و سکات می دهند و آنهایی که به آگیات ما ایمان می آورند. الَّذِينَ الرَّسُولَ النبی الام الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف ويناههم عن المنكر ويحل له الصيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويحرم عليهم الخبائت ويضعوا عنهم قصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونطروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون آنها که از سرستاده خدا پیامبر امی پیروی می کنند کسی که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است می آبند و آنها را به معروف دستور می‌دهد و از منکر باز می دارد ها را برای آنها حلال می‌شمرد، ناپاک‌ها را تحریم می کند و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آنها بود از دوش و گردنشان بر آنها که با او ایمان آوردند و حمایتش کردند و یاریش نمودند و از نوری که با او نازل شده پیروی کردند آنان رستگارانند قل یا ایوان ناسو انی رسول الله الیکم جميعا الذي له ملک السماوات والأرض لا اله الا هو ویحی ویمید فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذي يؤمن بالله وكلماته کلماته و لعلكم تهتبون بگو ای مردم من فرصاده خدا بسوی همه شما هستم و من که حکومت آسمان ها بسمین از آن اوست معبودی جز او نیست زنده میکند و میمیراند پس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده اش آن پیامبر درد نخوانده ای که ایمان به خدا و کلماتش دارد و از او پیروی کنید تا هدایت یابید ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبهن يعزنون بعد موسى غروه بسوي حق هدوجت میکنند وحاكم بحق و عدالتند وقد طالناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى تَقَوُّهُ قَوْمَهُ أَنِ اضْرِبْ بِعِصَاكَ الْحَجَرَ فَبَدَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَضَلَّ الْمَاءُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُلُوا مِن و آنها را به دوازده گروه که هر یک شاخه از دودمان اسرائیل بودند تقسیم کردیم و هنگامی که موسا تقاضای آب برای قوم تشنکامش در بیابان کرد به او وحی فرستادیم که اسال خود را به سنگ بزن ناگهان دوازده چشمه از آن بیرون ریخت آنچنان که هر گروه چشمه خود را می شناختند و ابر را بر سر آنها سایبان ساختیم و بر آنها من و سلوا فرستادیم و به آنان گفتیم از روزی های پاکیزه که به شما داده ایم بخورید و سپاس خدا را بجا آورید ولی آنها نافرمانی و ستم کردند اما بما ستم نکردند لیکن خودشان ستم نمودند. و ازیل له مسکنوا آده القرية و کلو منها حیث شئتم و طولو حصت و الباب سجدا نغفر لكم خطیئاتكم سنزيد المحسنين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 اما کسانی که از آنها ظلم و ستم به خیشتن کردند این سخن و آن برنامه ها را دگرگون ساختند و غیر از آن که به آنها گفته شده بود انجام دادند، لذا بخاطر ستمی که را داشتند، بلایی از آسمان بر آنها فرستادی. واسألهم عن القوة التي كانت حاضرة البحر إذا عدونت السبت اذ أتيهم حيتانهم يوم السبتهم في از تحسیهم حیتانهم یوم ثبتهم شرعا و یوم لا يثبتون لا تحسیهم کذالک نبلوهم بما و آنها در باره سرگذشت شهری که در ساحل دریا بود سوال کن و به خاطر بیاور هنگامی را که آنها در روز شنبه تجاوز و تغیان در برابر قانون خدا می کردند همان هنگام که ماهیانشان روز شنبه که روز تعطیل و استراحتشان بود آشکار می شورند. اما در غیر روز شنبه به سراغ آنها نمی آمدند. این گونه آنها را به چیزی آزمایش کردیم که در برابر آن نافرمانی می نمودند. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعِغُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِقُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِغَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَهَنْغَامِ <تصفيق> رَاكِ غُرُوكِ از آنها با غُرُوكِ دیگر گفتند چرا جمعِ گنهگار را اندرد میدهید که سرانجام خداوند آنها را حلاق خواهد کرد و یا به عذاب شدید گرفتار خواهد ساخت یعنی آنها را به حال خود واگذارید تا نابود شوند. گفتند این اندرسها ها برای اعتذار و رفع مسئولیت در پیشگاه پروردگار شماست و علاوه آنها بپذیرند و از گناه باز ایستند و تقوا پیشه کنند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 اما هنگامی که تذکراتی را که با آنها داده شده بود فراموش کردند نحیه کنندگان از بدی را به بخشیدیم و آنها را که ستم کردند به عذاب شدیدی خاطر نافرمانیشان گرفتار ساختیم فلم ما و عنه کل نالهم ان که در برابر فرمانی که به آنها داده شده بود سرکشی نمودند به آنها گفتیم به شکل میمون ها دروید و ترشید و اذ تأذن ربک لیبعثن عليهم علیہم يوم یوم من سوء العذاب و این لغفور رحیم و, لغفو و آر چون پروردگار تو اعلام کرد که بر ایشان تا روز قیامت کسانی را می گمارد که عذاب شدیدی را پیوسته بر آنها تحمیل کنند واقعا پروردگار تو در عذاب کردن سریع و او در عین حال آمر آمرزنده و مهربان است وَقَصَصْنَاهُمْ فِي الأرض أُمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ایشان را با گروهای مختلف در روی زمین تقسیم کردیم بعضشان صالح‌اند و بعضشان غیر ازین ایشان را به و بدیها آزمودیم تا باشد که بسوی ما باز کردند فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله أخذوه الم خذ عليهم ساقو الكتاب الا يقتلوا عل الله الا الحق ودرسوا ما فيه وبداعه الاخره خير للمذين يتقون افلا تعقلون بعد <تصفيق> از ایشن نفس جانشينشان شد که کتاب را میراث گرفتن و برای خود مطاع بی ارزش این دنیا را برگزیدند و میگویند ما آمرزیده خواهیم شد ولی در این حال اگر همانند همان متا به ایشان بیاید آن را میگیرند آیا از ایشان در کتاب عهد گرفته نشد که به خدا جز به حق چیزی نگویید و مطالبی را که در آن است اند و برای پرهیزگاران سرای آخرت بهتر است آیا نمی فهمید؟ وَالَّذِينَ يُمَسْتِقُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُسْ وَلَا تَإِنَّا لَا مُضِيعُ عَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَاکَتانی که به کتاب چنگ می و نماز را به تمام و کمال برپا می ما هرگز مزد مسلحان را زاگه نمی وَإِذَن تَقُنُ الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُمْ ذُنُبٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوهُ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوهُ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ اذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ به خاطر بیاور هنگامی را که ما کوه را بر بالایشان قرار دادیم گویا که آن سایبانی بود و داشتند که بر ایشان افتنده است به ایشان گفتیم آنچه را به شما دادیم به تمام نیرو بگیرید و آنچه را در آن است بیاد گیرید تا باشد که شما پرهیزگار شوید وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ زُرِيَّتَهُمْ وَأَشَهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا و با باید ار هنگامی را که پروردگار تو از فرزندان آدم از پشتهای اولادشان را گرفت یعنی بیرون آورد و ایشان را بر خودشان گواه ساخت از ایشان پرسید آیا من پروردگار شما نیستم گفتند بله ما شهادت می دهیم که تو پروردگار ماگی این برای آن است که مبادا در روز قیامت بگویید ما واقعا از این بودمأو تقولوا انما أشرك آباؤنا من قبل وقنا ذریة من ابتو بما فعل بیگمان پدران ما پیش از ما شرک آوردند و ما نعطلهای بعد از ایشان بودیم پس آیا ما را به نسبت کسانی که برای باطل رفتند حلاک می‌کنی؟ و کذالک مفصل ال ولعلهم یرجعون این ترتیب ما آیات را به تفصیل بیان میکنیم تا باشد که ایشان به سوی ما باز کردند وتلو علهمبع الذی تناهتن فالخمن فباطننو برایشان داستان کسی را بخوان که ما برای او آیات خود را دادیم ولی او از آنها بیرون آمد پس شیطان در پی او شد و او از زمرۀ گمراهان گردید ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثلوه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تفرقه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا و اگر میخواستیم مقام او را با این آیات بالا می بوسیم ولی او به پستی گراگید و از هوای نفس خیش پیروی کرد او همچون سگ گیرنده ای که اگر به او حمله کنی دهانش را باز و زبانش را برون خواهد کرد و اگر او را به حال خود با گذاری باز همین کار را می کند گوی آنچنان تشنه دنیا پرستی که هرگز پیراد نمی شود این مثل گروهیست که آجات ما را تکزیب کردند این داستانها را برای آنها بازگو کن شاو جد بین دیشند چه بعد مثل دارند گروهی که آجات ما را تکزیب کردند بلی آنها به خودشان ستم میکردند کردند من یهدی الله و من یهدیل فعلائی که هم که خدا هدایت کند هدایت یافته باقی او با آنها را که به خاطر اعمالشان گمراه سازد دیان کاران باقیی أون هوجم. وَلَقَرَّزَ رَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَبْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ مَادَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولائی که الانعام بلهم اضل اولائی هم الغافلون بطور طور مسلم گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدین آنها دلها یعنی عقدهای دارند که با آن اندیشه نمی کنند و نمی و چشمانی دارند که به آن نمی بینند و گوش‌های دارند که با آن نمی‌شنوند آنها همچون چون چهارپایانند بلکه گمراهتر اینان همانا غافلانند وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَدَعُوهُ بِهَا وَٱلَّذِينَ يُنْهَدُونَ فِي أَسْمَاءٍ ما و برای خدا نامهای نیکی خدا را با آن بخوانید و آنها را که در اسمای خدا تحریف میکنند و و غیر او هند و شریک برایش قائل می رها رحا صافید آنم به زودی جزای اعمالی را که انجام میدادند دادند می بینند و ممن خلقناهم و از بالحق وبه که آفریدین گروهی به حق هدایت می کنند و به حق اجرای عدالت می نموکان و الذين كذبوا بآياتنا نستبرهم من حيث که ما را تخریب کردند ایشان را از که خود نمی‌دانند درجه درجه در اذاب روح خواهیم و امّا لهم إنك يدي مدين أو لم ما رفوا من جنه إن هو إلا نبي مبین و به ایشان مهلت میدهم هم بیگو من تدبیر من مسین است آیا سیخ نکردند که هم نشینشان دیوانگی ندارد و نیست مگر دین ده دهنده آشکار اولم یا انظرو بی ملکوت استماوات والارض و ما غلط الله من شیئ و انعسائی یکون ای حديث آیا ایشان به اداره و نظم آسمان‌ها و تمین و هر چیزی که خداوند بند نمیبینند؟ و به این نمی‌اندیشند که شاید اجلشان نزدیک شده باشد. پس آیا به کدام سخن بعد از این ایمان می آورند؟ من له و هر کس را خدا بند به جرم اعمال زشتش گمراه سازد هدایت کننده ندارد و آنها را در تغیان و سرکشی رها می سازد تا سرگردان شوند.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 از كَأَنَّكَ است عَنَّا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عند الله ولكن لا يعلمون. که اللَّهِ آن بر چه زمانی بگو علمش نزد پروردگار من است و هیچ کس جز او نمی‌تواند وقت آن را آشکار سازد اما قیام قیامت حتی در آسمانها و زمین سنگین و بسیار پر اهمیت است و جز به طور ناگهانی به سراغ شما نمی آکد. باز از تو چنان سوال می کنند که گویی تو از زمان وقوع آن با خبری بگو علمش تنها نسل خداست ولی بیشتر مردم نمی دانند لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكترت من الخير وما مستني يسوء إن أنا إلا نبي وبسير لقومي بگو من مالک سود و زیان خیش نیستم مگر آن را خدا بخواهد و از غیب و اسرار نهان نیز با خبر نیستم مگر آن چی خداوند اراده کند و اگر از غیب با خبر بودم منافع فراوانی برای خود فراهم میساختم و هیچ بدی و زیانی به من نمی رسید من فقط بین دهنده و بشارت دهنده ام برای گروهی که ایمان می میآورند وَٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۚ بَل لَّنَاكَ وَٱلَّذِى حَمَلَتْ حَمْلًا غَضِيبًا فلمااسل ادر للهربهماوناو که شما را از نفس واحد آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا در کنار او بیا بیاساید سپس هنگامی که با او نزدیکی کرد حملی ثبک برداشت که با وجود آن به کارهای خود ادامه می داد با چون تنگین شد هر دو از خداوند بند پروردگار خیش خواستند که فرزند طالح به آنان دهد و ارده داشتند اگر فرزند صالحی به ماضیهی از شاکران خواهیم بود فلما آتاهما طالحا جعلا له الله اما به هنگامی که فرزند صالح به آنها داد موجودات دیگر را در این موهبت مؤثر دانستند و برای خدا شریک در این نعمت که به آنها بخشیده بود قائل شدند خداوند برتر است از آنچه چه شریک او قرار میدهند ما لا وهم آیا موجودات را شریک او قرار میدهند که چیزی را نمی آفرینند و خودشان مخلوقند و نمی توانند آنها را یاری کنند و نه خودشان را یاری میدهند و این تدعوهم الى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعو ام انتم صامتون به هرگاه آنها را به هدایت دعوت کنید از شما پیروی نمی کنند برای آنها تفاوت نمی کند چه آنها را دعوت کنید بچّه خاموش باشین این الذين تتبعون من دون الله عباد امثالكم تَدْعُوهُمْ فَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ آنها را كه غیر از خدا می خانید و پرستش می کنید بندگان همچون چون خود شما هستند آنها را بخوانید. و اگر راست میگوید باید به شما پاسخ دهند هند و را برآورند. ام لهم اوزن بها ام لهم ایدی یرقشون بها ام لهم اعیون بها ام لهم بها ولی در صورتی که اکنون نمی‌بینید فلاتون بغون آیا انهار لاعقل همانند خود شما باهایی دارند که به آن راه بروند یا دستهایی دارند که به آن چیزی را بگیرند و کار انجام دهند یا چشمانی دارند که به آن ببینند یا گوشهایی دارند که به آن بشنوند نه هرگز هیچ کدام بگو اکنون که چنین است این بت را که شریک خدا قرار داده اید بر ضد من بخوانید و برای من نقشه بکشید و لحظه مهلت ندهید تا بدانید کاری از آنها خاصنی این ولی الله الذين نزل الكتاب وهو اما و هوا یتغل الصالحین اما بلی بس پرست من خداییست که این کتاب را ناظر کرده است و او ترپرست همه صالحان است والذین الذین تدعون من دونه لا يستطیعون نفرق ولا انفسهم ينفرون ولی آن که به ایشان به جز خدا نیایش میکنید نمیتوانند نه شما را کمک کنند و نه هم به خودشان کمک کمکی کرده می تبانند. و وان تدعوهم ال الهد لا یسمرو وتراهم ینظرون وهم لا رفرون اگر اینها را براه راست بخوانید نمیشنوند ایشان را میبینی که به سوی تو نگرند در حالی که ایشان نمی قُلِ ٱعْمَلُوا۟ را پیشه کن و به کارهای پسندیده امر کن و از مردم نادان روی برگردان و ان ما ينزغنك من الشيطان ان تستقيم بالله انه سميع اگر وسوسه شیطان به سراغی آمد پس به خداوند پناه ببر دیگومن او شنوا و دانا انما الذين اتقوا اذا مستهم قهاب من الشيطان تذكروا و هم آنان که پرهیزگارند اند چون وسوسه ای از شیطان ایشان را فرا میگیرد خدا را یاد می کنند و ناگهان بینا میشوند و احوالهم یمدونهم فی الوهی صغون و دین نافرهیزگاران برادرانشان یعنی شیاتین آنان را فی در گمراهی پیش می برند و باز نمی ایستند و وَإِذَا لَمْ تَأْتِيْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَدْتَ بَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَبِعُ مَا يُوحَى إِلَىٰ مِن رَبِّهَا هَذَا بَطْرَأٌ مِن ربكم وأدى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ به هنگامی که در نزول وحی تأخیر افتد و آجهی برای آنها نیاوری میگویند چرا خودت از پیش خود آن را برمگوزیدی. بگو من تنها پیروی از چیزی می کنم که بر من وحی می شود. این وسیله بینایی از طرف پروردگارتان و موجه هدایت و رحمت رحمتت برای قومی که ایمان میآورند. وإذا قرآن قرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هنگامی که قرآن خوانده شود گوش فرا دهید و خاموش باشید تا مشمول رحمت خدا شوید واذکو رب ودون را در دل خود از روی تذرع و خوف و آهسته صافگاهان و شامگاهان یاد کن و از ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويمجدونه وله يسجدون که در مقام قرب نزد پروردگار تو اند هیچگاه از عبادتش تکبر نمی ورستند و او را تسبیح می گویند و برایش سجده می کنند